دو هفته گذشت و کارم در آن خانه به قلتک گفته هر روز صبح ساعت هشت به کرنت هاوس میرفتم و با یک سلام بلند حضورم را اعلام می کردم نیتن بعد از تعویض لباس ویل می آمد و درباره دارو و مهمتر از آن روحیه آن روزش توصیه های لازم را به من می کرد. من هم با دقت گوش می دادم. بعد از رفتن نیتن برای ویل رادیو یا تلویزیون روشن می کردم. داروهایش را آماده می کردم، گاه هم قرصهایش را توی هاون می معمولاً معمولا بعد از حدود ده دقیقه به من می گفت که دیگر حوصله ام را ندارد. من هم می رفتم خودم را با کارهای خانه سرگرم می کردم. آب دستمال هایی که تمیز بودند می شستم، یکی از وسایل جانبی جاروبرقی را شانسی انتخاب می کردم و قرنیز و لبه های پنجره را که تمیز هم بودند نظافت می کردم. طبق دستور خانم ترینر هر پانزده دقیقه به داخل اتاق سرک می کشیدم. هر بار می دیدم همانطور که درون سندلی چرخدار نشسته به حیات غمانگیز و بیروه خانه زلزده است. بعد برایش آب می بردم یا یکی از آن نوشیدنی های پرکالری که شبیه چسب کاغذ دیواری بود و انتظار داشتند مانع از کاهش وزنش شود و غذایش را می دادم. دستش از موچ کمی حرکت داشت ولی از شانه نه. بنابراین با یک قاشق قاشق غذا دهانش میگذاشتم بدترین زمان همین بود قاشق غذا به دهان یک مرد گنده گذاشتن یک جورایی عجیب به نظر می رسید استرابی که در خود احساس میکردم باعث میشد دست و پا چلفتی به نظر بیایم ویلچنان از این کار نفرت داشت که وقتی قاشق غذا دهانش میگذاشتم می, می کوشید اصلا نگاهش به چشمانم نیفتد اندکی بعد پیش از ساعت یک نیتن از راه می رسید و من سری پالتویم را میقااببیدم و میرفتم تا در خیابان قدم بزنم و در ایستگاه سرپوشیده اتوبوس نزدیک قلع نهارم را بخورم. احتمالاً وقتی آنجا می نشستم و صندویچم را گاز میزدم طرح و, مامیز و بدبخت به نظر می رسیدم. اما برایم مهم نبود. نمی تمام روز را در آن خانه سر کنم. بعد از ظهرها فیلم میگذاشتم. ویل عضو باشگاه فیلم بود و فیلم ها یه جدید هر روز از طریق پست می رسید. ولی هرگز از من دعوت نمیکرد با او بنشینم و فیلم ببینم. برای همین اغلب به آشپزخانه یا اتاق مهمان پناه می بردم. بعد از مدتی با خودم کتاب و مجله آوردم ولی احساس گناه می کردم که کاری انجام نمی دهم. تمرکز لازم را هم روی جملات نداشتم. گاهی خانم ترینر آخر وقت یک توکپا میآمد. گرچه حرف زیادی نمیزد و فقط می گفت اوضاع خوب است؟ جواب قابل قبول هم بله بود از ویل میپرسید که آیا به چیزی نیاز دارد یا نه؟ گاهی پیشنهادی برای روز بعد داشت که فکر می کرد ویل مشتاقش است مثلا بیرون رفتن یا دیدن دوستی که سراغش را گرفته است ویل هم اغلب به پیشنهادش بی تنایی می کرد البته نه به طرز گستاخانه ای خانم ترینر زنجیر طلایی دور گردنش را با دست به جلو و عقب حرکت می داد و ناراحت به نظر می رسید. بعد هم میرفت. پدرش چاق بود و مرد آرامی به نظر می رسید. اغلب زمانی می آمد که من آماده رفتن بودم. از آن دستمردانی بود که می دیدی کلای حسیدی به سر در حال کریکت هستند. از وقتی از کارش در شهر که حقوق بالایی هم میگرفت بازنشسته شده بود، مدیریت قلعه را به عهده گرفته بود. می زدم این کارش فقط برای فرار از خانه نشینی و خالی نبودن عریضه است. هر روز ساعت پنج بعد از ظهر می, می نشست و با ویل تلویزیون تماشا میکرد. گاهی موقع رفتن صدایش را میشنیدم که در مورد اخبار روز اظهار نظر می کند. دو هفته اول همش ویلترین را زیر نظر داشتم. میدیدم مسمم است کاملا متفاوت از دوران بیش از تصادف به نظر بیاید. موهای قهوه روشنش را گذاشته بود به طرز ناجوری بلند شود. تحریش همه صورتش را گرفته بود. دور چشمان خاکستری رنگش از خستگی مفرد چروک افتاده بود. شاید هم از درد و رنج دائمی بود. نیتن می گفت بیشتر وقتها درد دارد. چشمانش حالت سرد و بیفروغ نگاه کسی را داشت که از دنیای اطرافش دور مانده است. گاهی با خودم فکر می کردم شاید مکانیزم دفاعی باشد. شاید تنها راه برای کنار آمدن با شرایطش این بود که وانمود کند تبدیل به فرد دیگری شده است و دیگر خودش نیست. گویی این اتفاق برای کسی غیر از ویل ترینر رخ داده است. دلم واقعا برایش میسوخت وقتی میدیدمش که به بیرون پنجره ماتش برده است به نظرم غمگین ترین فردی میآمد که به عمرم دیدم با گذر ایام دریافتم شرایطش فقط مربوط به اصارت در صندلی چرخدار نیست. نه چون آزادی جسمیش را از دست داده است، بلکه به فهرست بلند بالا و بی پایان مشکلات جسمی روحی مربوط می شود که می‌توانند اواقب بدی در پی داشته باشند. با خودم فکر کردم. اگر من جای او بودم، احتمالاً به همین اندازه احساس درماندگی می کردم. با این همه، رفتارش با من بسیار زننده بود. هرچه می گفتم جواب تند و تیزی می داد. وقتی می پرسیدم سردش نیست، به من می پرید که اگر سردش باشد، خودش می تواند تقاضای پتوی اضافه کند. اگر می پرسیدم که صده جارو برقی عذیتش می کند، چون دلم نمی مزاحم فیلم فین تماشا کردنش شوم جواب میداد که چرا دنبال راهی نیستم که صدای برقی را خفه کنم. وقتی قاشق غذا دهانش میگذاشتم، همیشه شکایت میکرد که غذا گرم یا سرد است. یا پیش از آنکه دهانش خالی شود، قاشق بعدی را در دهانش گذاشتم. قدرت عجیبی داشت و با هر چه میگفتم یا انجام میدادم، طوری برخورد میکرد که در من احساس حماقت ایجاد شود. در طول دو هفته اول، به خوبی توانستم خودم را نشان دهم. فرار می میکردم و به اتاق مهمان میرفتم حتل امکان با او کم حرف می زدم کم کم از او بدم آمد مطمئنم که خودش هم فهمیده بود فکرش را نمیکردم که دلم برای کار قبلیم تا این حد تنگ شود دلم برای فرانک تنگ شده بود و نگاه حاکی از رضایتش وقتی صبحها مرا میدید که از راه می رسیدم. دلم برای مشتریها تنگ شده بود برای مصاحبت و وراجی با آنها که مانند دریای آرام در اطرافم در جوش خروش بودند این خانه با همه زیبایی و عظمتش مثل قبرستان خاموش و سرد بود وقتی خانه غیرقابل تحمل میشد زیر لب زمزمه میکردم شش ماه فقط شش ماه تا اینکه یک روز پنجشنبه وقتی داشتم نوشیدنی پرکالری پیش از ظهر ویل را آماده میکردم صدای خانم ترینر را از سالن شنیدم البته پیش آمده بود که گاهی صدایش را بشنوم منتظر ماندم آشوق در دستم بود صدای زنانه دیگری هم به گوش رسید صدای زن جوانی که به گوش خوش آهنگ بود صدای مردانه ای هم می آمد خانوم ترینر در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد خودم را سرگرم نشان دادم و تونتون محتویات داخل لیوان را هم زدم. خانم ترینر نگاهی به لیوان کرد و گفت آب و شیر با درصد شست به چهل درست کردی؟ بله، با تم توت فرنگی. دوستان ویل به دیدنش اومدن. چه عالی شد اگه تو... تم... بله، کاره زیادی دارم که باید انجام بدم. خیالم راحت شده بود که یکی دو ساعت سرش گرم است و با من کاری ندارد. در پوش لیوان را گذاشتم. چای چایی قهوه میل لدن؟ حالتش طوری بود که گویی قافل گیر شده است. بله، لطفاً، قهوه. فکر کنم... عصبی از همیشه به نظر می رسید. نگاهش به راه رو بود، جایی که صدای حرف می آمد. می دانستم به ندرت کسی به دیدن ویل می آید. فکر کنم... نگاهش به راه رو بود. فکرم همین کافی باشه. از قرار معلوم ذهنش جای دیگر بود. بعد ناگهان به طرف من برگشت و گفت. روپرت، دوست قدی با هم کار میکردن. حس کردم موضوع مهمی در جریان است و دلش میخواهد با کسی حرف بزند. حتی اگر آن شخص من باشم. و سیان. خیلی با هم بودن بودن دوشی زکلر قهوه حالیه مچکرم پیش از که در را باز کنم مکسی کردم. رانم را به در تکیه دادم تا به تعادلم را با سینی قهوه که در دست داشتم حفظ کنم. بعد همین که داخل اتاق شدم گفتم خانم ترینر گفتم قهوه بیارم. سینی را روی میز گذاشتم. لیوان ویل را در جالیوانی لیوانی سندلی چرخدارش گذاشتم و نی را طوری قرار دادم که به فقط با گردش سر محتویات داخل لیوان را بخورد. زیرچشمی نگاهی به میهمانان کردم. توجهم اول به زن جلب شد. پاهای بلندی داشت و بلند بود، با پوستی به رنگ کارامل. از آن تیپ زنهایی که همیشه وقتی میدیدم با خودم فکر می کردم آیا واقعا انسانها همه از یک گونهند؟ شبیه به اسب مسابقه از نوع انسانیش بود. این جور را گاهی میدیدم. دست بچه های کوچک را که لباس مارکدار پوشیده بودند محکم گرفته و از تپه قلعه بالا می رفتند. این زنها وقتی وارد کافه می شدند با صدای کاملا واضح و بدون اینکه خود متوجه باشند می هری عزیزم قهوه میل داری؟ بپرسم قهوه ماکیاتو دارند یا نه؟ قطعا زنی بود که ماکیاتو دوست داشت. بوی پوی، بوی اعتبار. بوی یک زندگی که در مجله های لوکس میدیدی از همه وجودش به مشام می رسید. بعد با دقت بیشتری به اون نگاه کردم و به دو نکته پی بردم. اول اینکه یادم آمد او را کنار ویل در عکسی که در حال اسکی بود دیدم. بعد اینکه خیلی موعظب به نظر می رسید. گونه ی ویل را بوسید. قدمی به عقب برداشت و به طرز ناشیانه لبخند زد. کت پوست بی آستین قهوهی رنگی پوشیده بود. چیزی که اگر من می شبیه قول می شدم. شال خاکستری روشن کشمیر هم دور گردنش بود که دائم با آن بر می رفت. انگار نمی دانست باید درآورد یا نه. زن به ویل گفت خوب به نظر می رسی. واقعا می گم. ماتم که بلند کردی. ویل چیزی نگفت. فقط به او نگاه می کرد. طبق معمول نمیشد از قیافش چیزی خواند. به ذهنم رسید که فقط من نیستم اینطوری می کند. مرد به پشت صندلی چرخدار ویل زد. طوری سرش را به علامت تعیید تکان میداد که انگار دارد از یک اتومبیل مسابقه درجه یک تعریف کند. اه صندلی چرخدار جدید چقدر شیک. عجب تکنولوژی پیشرفته ای داره. نمیدانستم چه کنم. هم همانجا ایستادم و از یک پا به پای دیگر جا, به جا شدم. بعد صدای ویل سکوت را شکست. لو، اگه اشکاری نداره هیزم توی بخاری بذار. فکر کنم لازم داشته باشه. اولین بار بود که اسم کوچکم را به زبان می آورد. گفتم، حتما. مشغول شدم. سبد هیزم را گشتم تا چوب مناسبی پیدا کنم و بگذارم توی بخاری. زن گفت بیرون خیلی سرده آتیش درست و حسابی میچسبه در شومینه را باز کردم به کمک سیخ بخاری هیزام فروزان را جابجا کردم هوای اینجا چند درجه از لندن سردتره. مرد تعیید کرد آره دقیقا. دارم فکر میکنم که برای خونه شومینه بخرم ظاهرا بهتر از بخاری معمولیه آلیسیا خم شد و با دقت به بخاری هیزامی نگاه کرد جوری که انگار تا حال شومینه ندیده است مرد گفت آره منم شنیدم باید داخلش رو خوب نگاه کنم یکی از کارهایی که میخوای انجام بدی و بعد لحظه ساکت شد و بعد گفت قهوه خوبی خوب ویل چه کارا میکنی؟ هیچ کار خواستی نمیکنم جالبه نه؟ فیزیوتراپی اینجور کارا که میکنی ها؟ هیچ موثر بوده؟ ویل گفت روپرت گمون نکنم به این زودی بتونم دوباره برم اسکی در آهنگ صدایش وجود داشت. با خودم لبخند زدم. همون ویلی بود که میشناختم. خاکستر را از آتشتان جمع کردم. حس میکردم همهشان دارند به من نگاه میکنند. سکوت سنگین برقرار شده بود. به خودم گفتم شاید مارک بلوزم بیرون افتاده و دنبال جلب توجه است. عاقبت ویل سکوت را شکست. این افتخار مدیون چی هستم ؟ هش ماه شده. ام هم... آره میدونم سرم باجر شلوک بود کار جدیدی تو چلسی پیدا کردم مدیریت بوتیک ساشا گلستاین ساشا رو یادت میاد آخر هفته هم سر کار بودم شنبه حسابی شلوک میشد وقت فراغتی باقی نمیموند صدای آلیسیا خشک و خشن شده بود یکی دو بار زنگ زدم مادرت گفت بهت؟ ویل عوضت خرابه، خودت میدونی چطوریه، یه شریک جدید گرفتیم، یارو از اهالی نیویورک به اسم درنبیانز، با اون برخورد کرده بودی؟ نه مردی که 24 ساعت تو روز کار میکنه، از همم هم انتظار داره که مثل خودش کار بکنن کاملا پیدا بود که مرد وقتی دید موضوعی برای صحبت پیدا کرده که با آن راحت است، نفس راحتی کشید. تو اخلاق قدیمی نیویورکیا رو میدونی. فرصت کمی برای نهار؟ کسی هم اجازه نداره جوکی بی تربیتی تعریف کنه. ویل باید بگم جو اونجا کاملا تغییر کرده. واقعا؟ <تصفيق> آره، وقتی هم مریضه بازم میاد سر کار. گاهی حس میکنم جرأت ندارم از پشت میزم بلند شم. جهب اتاق یک بار عوض شده بود. صدای سرفه آمد. بلند شدم. دستم را با شلوارم پاک کردم. به طرف بیل برگشتم و با نجوا گفتم من... من میرم کمی هیزم بیارم. سبد مخصوص هیزم را برداشتم و فرار کردم. هوای بیرون خیلی سرد بود. اما من طولش دادم. هیزمها را وارسی میکردم تا انتخاب کنم. میخواستم وقت کنم. داشتم با خودم فکر می یخ یخزدن از سرما بهتر از برگشتن به آن اتاق است. اما هوا به شدت سرد بود و انگشت اشارم زودتر از بقیه کبود شد و در نهایت پذیرفتم که شکست خوردهام. همین که به اتاق نشیمن نزدیک شدم صدای زن را شنیدم. در اتاق کمی باز بود برای همین صدا بیرون میامد. زن داشت میگفت گفتویل دلیل دیگه هم برای اومدن به اینجا دارم. خبرهای هست. پشت در ایستادم. سبد هیزم را محکم با تو دست گرفته بودم. فکر کردم یعنی فکر کردیم که تو باید بدونی. اما خب باید بگم من و روپرت غصه ازدواج داریم. ساکت همانجا ایستادم. داشتم فکر میکردم آیا میتوانم بی سر و صدا برگردم بدون اینکه کسی متوجه من شود. زن با لحن تردیدآمیزی ادامه داد. میدونم که شاید یکم شوکه شده باشی. در واقع خودمم شوکه شدم. ما خب از مدت ها قبل بعد از... دستم درد گرفته بود. نگاهی به ثبت کردم. با خودم گفتم حالا چه کار کنم؟ خب تو خودت میدونی که من و تو، ما، دوباره سکوت سنگین حوکی فرما شد. فیل لطفاً چیزی بگو. بالاخره ویل به زبان آمد. مبارک باشه. من میدونم چه فکر میکنی، اما هیچ کدوم ما که نمی این اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که مدت های مدید فقط دوست بودیم. دوستایی که نگران حال تو بودن. بعد از سر تو روپرت بیشتر از همه حمایت هم کرد. لطف کرد. لطفا این برخورد و نکن. خیلی بده. واقعا از گفتن به تو وحشت داشتم. یعنی هر دوی ما. ویل با قاطعیت گفت. پیداست. صدای روپرت به گوش رسید. ببین ویل، فقط به این خاطر داریم به تو میگیم چون برامون مهم هستی. درمون نمیخواست از دیگران بشنوی. تو خودت میدونی که زندگی به راهش ادامه میده خودت این رو حتما میدونی. به هر حال دو سال گذشته دوباره سکوت برقرار شد. دوست نداشتم بیشتر از این بشنوم. آهسته برگشتم و کوشیدم هیچ صدایی ایجاد نشود اما صدای روپرت که دوباره شروع به حرف زدن کرده بود. انقدر بلند بود که به گوش من برسد دست بردار مرد میدونم خیلی سخته تمومش اما اگه لیسا براد مهمه خوشبختیشو شو میخوای ویل لطفایم چیزی بگو خواهش میکنم میتوانستم قیافه ویل را پیش خودم مجسم کنم در این حال که نمیشد چیزی از آن خواند بی اتنایی آمیخته به نفرت نیست در خود داشت ویل دوباره گفت تبریک مطمئنم هر دوتون به سعادت میرسید آلیسیا لب باز کرد تا حرفی بزند چیزی مبهم و نامفهوم ولی روپرت وسط پرید و گفت آلیسیا ویل کن فکر کنم دیگه بعد بریم ویل از تو توقع نداریم برامون دعایی خیر کنی برای این اینجا نیومدیم فقط از سر عذب بود آلیسیا فکر کرد... خب در واقع هر دو فکر کردیم تو باید بدونی. متاسفم دوست قدیمی. من... من امیدوارم اوزاد به بهبودی بره و امیدوارم هر شرایطت بهتر شد با ما تماس بگیری. صدای پاشنیدم روی سبد هیزم خم شدم. و نمود کردم تازه از راه رسیدم. شان را از راه رو می شنیدم. بعد آلیسیا مقابلم ظاهر شد. چشمانش قرمز بودند. چیزی نمانده بود که به گریه بیوفتد. گفت میتونم برام دست شوی؟ صدایش کلوفت و خشدار بود. دستم را آهسته بالا بردم و بیان که حرفی بزنم راه را نشانش دادم. از نگاه سرد و خشکی که به من کرد فهمیدم چهرم احساسم را بروز میدهد. بعد از لحظه مکس گفت میدونم چه فکری در مورد من میکنی اما من سعی خودم را کردم. واقعا سعیمو کردم، ماها، ولی اون فقط من از خودش روند. حالتش خوشک و جدی بود، ریافش به طرز قریبی خشمگین به نظر می رسید. ولی اون خودش واقعا نخواست اینجا پیشش باشم، خیلی واضح و بیپرده به من گفت. زن منتظر بود من چیزی بگویم، سر انجام توانستم حرفی بزنم. این موضوع به من نداره چشم به چشم هم دوخته بودیم گفت خودت میدونی فقط به کسی میشه کمک کرد که خودش بخواد این را گفت و رفت دقایقی منتظری است دادم صده ی رو شنیدم که خارج میشد سپس به آشباسخانه برگشتم همان ماندم و با اینکه میلی به خوردن چای نداشتم کتری روشن کردم سرگرم ورق زدن مجل شدم که قبلا خوانده بودم. بعد به راهرو برگشتم. سبد هیزم را برداشتم و به اتاق نشیمن رفتم. پیش از اینکه وارد اتاق شوم سبد را آرام بدر زدم تا ویل را از آمدنم با خبر کنم. گفتم شاید بخواید... ولی کسی در اتاق نبود. اتاق خالی بود. در همان لحظه صدایی شنیدم بعد دوباره همان صدا آمد به طرف راهرو دویدم. صدای خورد شدن شیشه بود. صدا را دنبال کردم. از اتاق خواب ویل میآمد. اوه خدایا به خودش آسیب نرسانده باشد. به شدت وحشت کرده بودم. هشدارهای خانم ترینر مثل پتک به سرم کوبیده میشد. بیشتر از پانزده دقیقه تنهایش گذاشته بودم. به انتهای راه رو رسیدم. در آستانه در ایستادم. هر دو دستم روی چارچوب در بود. ویل را وسط اتاق دیدم. صاف و مستقیم توی صندلی چرخدار نشسته بود. روی دسته صندلی بود و حدود چهل و پنج سانتی متر از سمت چپش بیرون زده بود، از که در واقع نزه نبردش بود. حتی یک قابعکس هم روی طبقه های طویل بوف باقی نمانده بود. واب های گران قیمت خورده خاکشی روی زمین پخش بودند. فرش پر از خورده های برراغ شیشه بود، تکه های شیشه روی پاهایش هم ریخته بودند. اواع خیلی به هم ریخته بود. وقتی دیدم آسیب به خودش نرسانده است، زربان قلبم آرام شد. فیل بد جور نفس می کشید. هر کاری که کرده بود با تقلای زیاد همراه بود. سندلیش شرخی خورد. خورده شیشه ها قیش قیش به صدا درآمدند. چشمش به من افتاد. بی نهایت خسته به نظر می رسید. آنقدر خسته که به من جسارت ابراز هم دردی میداد. به پاهایش نگاه کردم. بعد به زمین اطرافش. در میان آن به هم ریختگی عکسی از او و آلیسیا دیدم که به سختی قابل شناسایی بود. صورت آلیسیا در قاب عکس کج و نقره ای نامشخص بود. آب دهانم را قرت دادم و به عکس زل زدم. بعد آرام آرام سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم. طولانی ترین ده هزات عمرم بودند. بعد وقتی توانستم چیزی بگویم گفتم: چرخهای صندلی پنچرم میشن چون یادم نیست و کجا گذاشتم چشمانش گرد شدند لحظه ای فکر کردم حرف بدی زدم ولی بعد نامحسوس ترین دبخند دنیا را لبانش دیدم گفتم لطفا حرکت نکنید الان جارو برقی میارم صدای اصار را شنیدم که به زمین افتاد وقتی داشتم از اتاق خارج میشدم به نظرم آمد که صدایش را شنیدم که گفت با تحسفم کینز هیت پنج شب همیشه شلوغ بود بار که در حاشیه قرار داشت حتی شلوختر هم بود. خودم را به زور بین پاتریک و مردی که ظاهرا اسمش راتر بود جا دادم. هر از گاهی به ابزارالات برنجی مخصوص اسب که از تیر چوبی بالای سرم آویزان بود و به تصاویر قلعه که تیرک را میپوشاند خیره میشدم. تلاش میکردم به صحبت هایی که در اطرافم جریان داشت توجه چندانی نکنم. بیشتر صحبتها ها نسبت چربی بدن و کربوهیدرات میچرخید همیشه فکر میکردم جلسات گروه ورزشی پاتریک که دو هفته یک بار در آنجا برگزار میشد، شاید بدترین کابوس صاحبان بار باشد. من تنها کسی بودم که الکل نوشیدم و تنها پاکت چیپس موجود مال من بود که خالی و مچاله روی میز افتاده بود. دیگران جرعه جرعه آب معدنی سر می کشیدند یا میزان کالری نوشابه‌های رژیمیشان را محاسبه می‌کردند. سرانجام سفارش غذا دادیم، اما خبری از سالات نبود که بتوانیم با ساس پرچربی بخوریم یا تکه جوجه که هنوز پوستش به با آن باشد. من اغلب سیبزمینی سرخ کرده سفارش می و آنها را تماشا می کردم که وانمود می دوست ندارم بخورند. نمی توانم بگویم از جمع دوستان پاتریک لذت می بردم. اما با توجه به ساعت کاری من و برنامه هفتگی آموزشی پاتریک یکی از معدود اوقاتی بود که قطعا می توانستم او را ببینم. پاتریک کنارم نشسته بود و با اینکه هوای بیرون بی نهایت زرد بود، پاتریک شلوارک پوشیده بود. اعضای باشگاه وقتی اینطوری کم لباس می کلی به هم پوز می دادند. درتا لاغر و قوی بودند و با ورزش های پیچیده و ارزشمندی که مایه فخر و مباهات بیشتری در آنها میشد خودی نشان میدادند. بعضیها هم وزنی سبکتر از پرداشتند و تلاش میکردند ماهیچه بیاورند و بدن ورزشکاری پیدا کنند. دخترها آرایش نداشتند و از آن دستافرادی بودند که کیلومترها دویدن در هوای سرد برایشان کاری ندارد. با نفرت به من نگاه میکردند. حتی شاید درکم نمی کردند بیشک نسبت تبدیل چربی به ازوله را در بدنم ارزیابی می کردند و کلی ایراد از اندامم می گرفتند آیا می توانم بدون اینکه کسی به من چپ چپ نگاه کند کیک پنیر سفارش بدهم به پاتریک گفتم واقعا وحشتناک بود دوست دخترشو بهترین دوستش پاتریک گفت نمیشه از دختر ایراد گرفت واقعا تو خودت اگه من از گردم فلت بازم کنارم میمونی صده البته که میمونم نه نمیمونی هرچند خودم همچنین توقعی از تو ندارم خب ولی من ولد نمیکنم اما من نمیخوام بمونی دوست ندارم کسی از روی تره پیشم بمونه کی گفت از روی از که همون آدمی؟ نه نیستم دیگه هرگز همون آدم نیستم ببینیش چین انداخت و گفت؟ اصلا دیگه نمیخوام که زنده باشم باید برای هر کاری به دیگران متکی بود وای دیگران بیان و دور لبتو تمیز کنن خودت هیچ کاری نمیتونی انجام بدی سرش را داد. دیگه نمیتونی بدویی دو شرخ سواری کنی بعد به من نگاه کرد. طوری که انگار تازه به ذهنش رسیده است. دیگه نمیتونی با زنی بخوابی. پاتریک جرعه ای آب سر کشید. ببین تو گفتی آدم ترسناکیه. شاید قبل از تصادف ترسناک بوده. شاید دلیل اصلی همینه که برش کرده و رفته. فکرشو کرده بودی؟ نمیدونم. یاد عکسی افتادم که دیده بودم. ظاهرا که کناره هم خیلی شاد بودم. اما عکس واقعا می توانست چیزی را ثابت کند خودم عکسی توی خانه داشتم که طوری به پاتریک لبخند می زدم انگار از آتش سوزی بیرونم کشیده است در صورتی که در آن لحظه گساله تمام عیار خطابش کرده بودم و او با یک بزن به چاک دوستانه جوابم را داده بود پاتریک علاقهش را به موضوع از دست داد هی جیم جیم نگاهی به اون دو شرخه جدید سباق بس کردی؟ چطوره؟ من هم دیگر حرفی در این مورد نزدم و گذاشتم موضوع صحبت عوض شود به حرف آلیسیا فکر می کردم می توانستم به خوبی بیل را مجسم کنم که او را پس می زند. اما اگر واقعا عاشق کسی هستی وظیفه داری کنارش بمانی؟ به او که افسرده است کمک کنی؟ در بیماری، در سلامت و در هر شرایطی. از اینکه که کار را زیر بین گذاشتم کمی احساس گناه کردم به خصوص وقتی یادم آمد که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. ولی مگر میشد فکر آدم به جنبه خصوصی زندگی کسی مثل او کشیده نشود پاتریک به آرنج به پهلویم زد دارم فکر می کنم کار بزرگو انجام بدم کار بزرگ؟ مسابقه سگانه اکستریم 100 کیلومتر با دو شرخه کیلومتر دو و یک شنای عالی تو دریای زیر صرف درجه شمال اروپا از وایکینگ با احترام زیاد یاد میکردند این گروه با وجود آسیب دیدگی شدید مسابقه داده بودند مثل سربازان کهنه کار جنگ ها به خصوص جنگ وحشیانه با صحبت از آن آب از لبلوچه پاتریک را افتاده بود به دوستم نگاه کردم و از خودم پرسیدم آیا واقعا یک غریبه نیست؟ با خودم فکر کردم من زمانی با او دوست شدم که در کار بازاریابی تلفنی فعالیت داشت و غیرممکن بود از پمپ بنزینی رد شود و از فروشگاه شکلات نخرد و یک شکم سیر نخورد. پس من داری شرکت کنی؟ چرا نه؟ تا الان هیچ وقت نداشتم. به تمرین های اضافی فکر میکردم. صحبت های بی درباره وزن و مسافت آمادگی بدنی و استقامت این روزها حتی در بهترین شرایط هم به سختی میشد توجه پاتریک را به خود جلب کرد گفت، تو هم میتونی با من بیای ولی هر دو می که خودش هم به حرفی که میزند اعتقادی ندارد گفتم ارزونی خودت خودت برو بعد که پنیر سفارش دادم. اگر فکر می کردم حوادث روز قبل به ایجاد سمیمیت در گرنت هاوس می انجامد قطعا اشتباه کرده بودم. لبخند زنان به ویل سلام گرمی کردم. ولی او حتی به خودش زحمت نداد صورتش را از پنجره به طرف من برگرداند. نیتن همینطور که کتش را می زیر لب گفت، امروز اوزا خوب نیست. ابرها پایین بودند و صبح بسیار ودی بود. نمنم باران به پنجره می بارید و فکرش را هم نمی شد کرد که خورشید دوباره طلوع کند. در چنین روزی آدم خود به خود احساس افسردگی می کند. اصلاً جای تعجب نداشت که ویل بد اخلاق‌تر از همیشه باشد. سرگرم کارهای روزمره صبحگاهی شدم. تمام مدت هم به خودم می گفتم ناراحت نباش. مجبور نیستی صاحب کارت را دوست داشته باشی. خیلی‌ها صاحب کارشان را دوست ندارند. روز قبل اکس ها را با دقت فراوان در کشو آخر جاسازی کرده بودم. حالا هم روی زمین سرپا نشسته بودم و اکس ها را بیرون می آوردم. میخواستم قاب عکسایی را که میشد درست کرد جدا کنم من مهارت فوق در تعمیر چیزهای خراب داشتم از آن گذشته فکر میکردم راه خوبی برای وقت گشیست بعد از حدود ده دقیقه که سرگرم کار بودم صدای آرام صندلی چرخدار موتوردار را شنیدم که از ورود ویل خبر میداد همانجا در آستانه در ایستاد و به من خیره شد سایه های سیاهی زیر چشمانش دیده میشد. نیتین گاهی به من میگفت که ویل شب قبل لحظه پلت روی هم نگذاشته است. نمی توانستم تصورش را بکنم که آدم تمام شب روی تخت خواب حبس باشد و نتواند پایین بیاید. فقط هم افکار غمانگیز و نومیدانه همراه لحظاتش باشد. یکی از قاب اکس ها را بالا گرفتم و گفتم فکر کردم شاید بتونم بعضی رو درست کنم. عکس خودش بود که داشت به کمک تناب کشی از ارتفاع می پرید. تلاش کردم حال به نظر بیایم. به کسی احتیاج دارد که خوشروب و خوشبین باشد. چرا؟ پلکی زدم. خب... فکر کردم میشه بعضی رو نگه داشت. به خودم چسب چوب اووردم. البته اگه شما مایل باشید. اگر هم قاب عکس جدید بخواید میتونم وقت نهار که بیرون میرم بخرم. اگه دوست داشته باشید هوایی تازه کنید با هم میتونید کی به تو گفت این کارو بکنی؟ نگاهش قاطع و تزلزل ناپذیر بود آه، خب، فکر کردم من فقط میخواستم کمک کرده باشم تو میخواستی گنکاری دیروزم و جمع جور کنی؟ من... لو، میدونی موضوع چیه؟ فقط برای یه بارم که شده چقدر خوب بود که به خواسته من توجه میشد؟ شکستن این قابع اکس تصادفی نبود فکر نکن زده بود به سرم یا قاطی کرده بودم من واقعا دوست ندارم چشمم به این عکس بیفته بلند شدم ببخشید فکر نمی کردم. فکر کردی داری کار خوبی میکنی همه فکر میکنن که میدونن خواسته من چیه این اکس های لعنتی رو سر جاشون تا این بدبخت افرید چیزی برای نگاه کردن داشته باشه دوست ندارم این عکسای لعنتی اینطور به من دهنکژی کنن به من که اسیر رخت خواب هستم و منتظرم تا کسی بیاد و بلندم کنه شیرفم شدی حرفم و فهمیدی آب دهانم را خرد دادم قصم عکس آلیسیا نبود اینقدر نادون نیستم فقط فکر کردم شما حس میکنید که ای خدا صورتش را برگردند آهنگ صدایش انتقادآمیز بود لازم نیست برام روانشناسی شناسی کنی تو فقط برو او مجلههای های خال زنکی و بخون هر وقتی دیگه کاری نداری و نباید چای درست کنی برو هر کاری دوست داشتی بکن گناه هایم برف بودند ایستادم و تماشایش کردم که داشت از راه روی باریک میگذشت پیش از اینکه متوجه باشم چه میگویم از دهانم خارج شد شما نباید اینجور مثل آدم عوضی یا رفتار کنید متوقف شد. یک مکس طولانی بعد برگشت و آرام به طرف من آمد. مقابل هم قرار گرفتیم. دستش روی دسته ی فرمان صندلی بود. چی گفتی؟ به چشمانش زل زدم. قلبم تاپ تاپ میزد. با دوستاد برخورد تندی کردیم خب شاید حقشون بود. اما من هر روز اینجا میام و تلاش میکنم که به بهترین نحو ممکن کارمو انجام بدم. از شما ممنون میشم اگه روزگارم و سیاه نکنید. عین کاری که با دیگران میکنید. چشمان ویل از تعجب گرد شدند. گویی انتظارش را نداشت. بعد جواب داد. و اگه من به تو بگم که دوست ندارم اینجا باشی چطور؟ من در استخدام شما نیستم. مادرتون استخدامم کرده. و تا وقتی ایشون به من نگن که دیگه به من نیازی نیست، کارمو ول نمی نه به این دلیل که شما برام مهم هستید یا این کار مزخرف و دوست دارم یا قسم ایجاد تغییر تو زندگی شما باشه بلکه به این دلیل که به پول نیاز دارم متوجه هستید من واقعا پول لازم دارم قیافه ویل به ظاهر تغییر چندانی نکرد ولی من حیرت را در او میدیدم انگار عادت نداشت کسی با او مخالفت کند و جوابش را بدهد. وقتی متوجه حرفی که زدم شدم با خودم گفتم آخ لعنتی این دفعه دیگه واقعا خیت کاشتی اما فیل فقط چند لحظه به من زد بعد وقتی دید نگاه خیره من هم همچنان به اوست نفسی تازه کرد طوری که انگار میخواست چیز ناخوشایندی بگوید گفت مشکلی نیست اون رو بذار توی کشه آخر همشون آتووجه شدی؟ بعد اومه کتایی کرد و رفت